ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منظر آن مه عاشق کش ای کجاست شب تار است و راه وادی ایمن در پیش آتش تور کجا موعد دیدار کجاست هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بگویید که خوشیار کجاست آن کس استحله بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسیر محرم اصرار کجاست هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ما کجاییم و ملامتگر بیکا کجا باز پرسید زگی سوی شکن در شکنش کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو؟ دل ما گوشه گرفت روی دلدار کجاست ساغی و مطرب و می جمله محیاست ولی ایش بیار محیا نشود؟ یار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بی خواب کجاست